بسم الله الرحمن الرحیم بعد از عرف رسیدی به بحث الفصل التاسع الدلیل التاسع قول الصحابی دلیل ظهور قوله صحابی است خب آیا سخن صحابی به ذریه‌ای که صحابه داده است این دلیل هست یعنی یک انسان میتونه به وسیله این حکمی رو ثابت بکنه بگه این مساله این طور هست به خاطر صحابی صحابه جوری گفته آیا دلیل هست یا نه شو ما عليك سننوز له بالكتاب الصحابي ابتدا صحابينا تعريف بكنا الصحابي إن علماء الأصول من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه أرفا ومات مؤمنا مثل الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم میفرماید صحابی در نزد جمهور علمای اصولا علمای محدث نه. تو شما تعریف صحابی رو هم در کتب مصطلح هم خودید ولی این تعریف تعریفی نظریه نزدیک اکثر اصولیان میفرماید می صحابی در نزد جمهور علمای اصول کسی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم را مشاهده کرده است و به او ایمان آورده است. و به مدتی همراه او بوده است که کافی هست اطلاع کرده ده کلمه صاحب، کلمه همراه بر او عرفن <تصفيق> یعنی ارفن به اندازه باش همراه شده باشه که ارفن بشه بهش گفت صاحب و همراه و در حال مومن هم فوت کرده باشد اما مثلا تعریف مصطلحی محدثین طردیس شما می‌ویدید مثلا ابن حجر در کتابش بیار بگه صحابی کسی است که پیغمبر رو دیده است اصلا مدت مدت همراهی اصلا مهم طولانی باشه چ کم به محض دیدنش دیگه چه است بله البته اون شرایط رو داشته باشه مانند خلفای راشدین عبدالله بن عباس عبدالله بن مسعود و غیره بله پس این تعریف صحابه بود در نزد جمهور علمای اصول أم حجة مودة قول الصحابة, مودة الصحابة؟ وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحابه الكرام بالإفتاء والقضاء بين الناس وقد نقلت إلينا فتاوهم فهل يصح أن نعتبر هذه الفتاوى مصدرا من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهد إذا إذ لم يجد للمسألة حكما لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ها مختلف فیهی العلماء دقت داشته باشید بیگه بعد زفات پیانبر گراملی اسلام صلی عليه علیه وسلم اصحاب کرام فتوا می و بین مردم قضاوت می‌کردند و فتاوایشون برای من نقل شده است آیا صحیح است که ما این فتاوای رو این فتاوای صحابه رو مصدری برای مصادر فقه حساب کنیم دلیلی برای از ادله حساب کنیم که مجتهد ملتزمه به اون بشه زمانی که برای مسئله حکمی رو در کتاب و سنت و اجماع افت آیا این فتاوا مصدری هستند از مصادر از دلیل از ادله هستند که مجتهد در حدگام نبوده قرآن و سنت و اجماع بش احتجاج كنت هذا ما اختلف فيه الولماء إن ان تشيز ياسك علماء در رابط ما انتكار کرده أنت اختلاف کرده صدو بسوك تحديد محل الخلاف هل بيادون محل اختلاف شنو درغم شخص بيكون كنت جاي در قول صحابي اختلاف و ومحل اختلاف الولماء في حجية قول الصحابي ليس على اطلاقه بل فيه تفصيل بیگی محل اختلاف علماء در حجت بودن قول صحابی اینجوری مطلقا نیست بلکه درش تفصیل وجود داره در قول صحابی چی وجود داره؟ اولا قول صحابی ما لا یدرکو بالرأی والاجتهاد حجتن ان العلماء لانه محمولن الاسمائی من النبی صلی الله علیه وسلم فیكون من قبیل سنتی نوع اول اون سخن صحابی اون نظر صحابی اون سخنی که صحابی گفته ولی با اجتهاد و با نظریه و با رأی نمیشه همچنین سخنی گفت اولین نوعش اون سخن صحابی هست که با رأی و با اجتحاد نمیشه نظری داد، میگه این نوع سخن صحابی در نظر علما حجت است چرا؟ چون حمله بر این میشه که این سخن رو از پیغمبر شریده، در نتیجه این نوع سخنش از نوع سنت هست از نوع چی هست؟ چرا؟ خب اومده در مورد غیبیات یه سخنی گفته که نمیشه با نظریه و با اجتهاد همچنین نظریهی داد پس حمله میشه که این سخن رو حتما از پیغمبر شریده نه؟ نه مانند اون چیزی که عبدالله بن مسعود روایت کرده که میگه این اقل الحیزی صلاح کمترین مدت سه روز است. میگه این چیزی است که نمیشه. تیباقه. مثلا نزری هم حرفی رو گفت. همان این حمله بر ماه میشه که اینو شرید است به صلی الله علیه و سلم. قول الصحابیه لذی حصل عليه الاتفاق، یعتبر حجة شریعه، لانه وی اجمال. دو نوع دوم. و القول صحابه که برش اتفاق وجود داره ها صحابی سوخدی رو گفته صحابه دیگه هم اینو گفتن لزره همه شو هست سخن همه هست میگه این هم حجت شرعی است چرا چون این اجماع است صحابی چیزی گفته باقی هم تایید کردن این از نوع چی هست پس اجماع هم که جز حجت هست و كذلك قول الصحابی الذي لا يعرف له مخالف يقول يكون بالقبیل الاجماع و هر تری سخن صحابی که مخالف نداشته باسن از نوع اجماع سکوتیه، از نوع اجماعیه. صحابه سخنی رو گفته، بقیه هم گفتن. اون میشه اجماع سریح حجتی. صحابه سخنی رو گفته که بقیه باش مخالفت نکردند. این میشه از نوع اجماع سکوتی. یعنی یکی گفته بقیه سکوت کردند. که. میگه هو از الحجت الشریعت و, و اندلاعایلی در اجماع سکوتی این نوعش هم حجت شرعی هست نزد اونایی که میگن اجماع سکوتی چه هست؟ حجت هست اونایی که اجماع سکوت رو حجت می داریم این نوع سخن هم جزء اجماع هست پس قول اول صحابی رو خود دیم. از نوع حجت بود ها؟ از نوع سنت بود دو قول صحابی بود که از نوع اجماع توضیحش داد خودش ثالثا قول صحابی لا يعتبر حجت ملزمتن على صحابیه ملزمتاً على مثل مثله فقط رعین الصحابت یخسلفون فيما بينهما و لم يلزم احدهم الآخر بما ذهب إله یک مساله سه رو توضیح میده میگه قول صحابی معتبر نیست حجت نیست حجتی که بر صحابی مثل خودش هم اعتبار داشته باشه پس قول صحابی اعتبار ندارد به عنوان حجتی که الزام باشه بر صحابی بانند خودش ما دیده این صحابه رو که بین همدیگر اختلاف نظر داشتند و هیچ کدام دیگری رو بر نظر خودش الزام نکرده است اینو پس توضیح داد اون سخنان صحابه که با هم دیگه چه داشتند؟ اختلاف داشتند حالا اون سخنان صحابی که با هم اختلاف داشتند یا نظریش از روی رای اجتهاد بوده و اجبار نبوده روش برای ما برای ما چه است ای حدت است یانه اینو در شماره 4 توضیح میده رابعن قول الصحابی الصادر عن رأی و اجتهاد چهارمین اون قول صحابی هست که از رأی و از اجتهاد صحابی صادر شده و هذا هو الذي حصل فيه اختلاف هل يكون حجه على من جاء بعده ابلا بیگه چهارم قول صحابی که از رأی و از اجتهاد صادر شده و این اون نوعی هست که در موردش اختلاف وجود داره که آیا برای بعدی ها برای چی؟ برای من و شما آیا حجت هست یا نیست؟ حالا دقت کنید که این رو توضیح بده اون بحث امروز ما دیگه ذهب بعض العلماء الى انه حجتون شرعیتون و علی المجتهری ای خدا بقول الصحابی اذا لم يجد الحکم في الكتاب ولا في السنه ولا في الاجواء از علما بیگویند این نوع چهارم که از روی اجتهاد بوده است و رای حجت شرعیست و بر مجتهد لازم است که قول صحابی را بگیرد زمانی که حکم را در کتاب در قرآن در سنت و در اجواء نیفت گروهی از علما پسی گفتند این نوع چهارم هم حجت شرعي هست ولذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة شرعية ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي بل أليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي گروه ديگر الآلما قفتان كده إنو إتارون حجة شرعي نيست ولازم نيست برمجتهد كي قول الصحابي رو نوعی رو بگیرد بلکه مجتهد است که طبق اقتضای دلیل شرعی فتوا بدهد عدله قرآن و سنت رو بررسی بکنه به هر ای که رسید اونو فتوا بده نه اون قله صحابی رو که روی رعی رو و رو اجتحان بوده این نظره گروهی دیگر از علماء بود ولذی نرجحو اما ببینیم استاد زیدان کدوم ترجیح داده ایشود. شد والذي نرجحه أن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة يملزمة بيقيك أنشك ما ترجيش في دهي من اسك قول الصحابي حجة إلزامي نيست ولكن نبيل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجباعي ولا يوجد في المساله دلیل آخر معتبر اما ما با به این هستیم که گرفته بشه ما با به این هستیم ببین حجت الزامی نیست اما ما به این هستیم که گرفته بشه زمانی که نسی در قرآن و سنت نبود اجماعی هم وجود نداشت و دلیل معتبر دیگه هم وجود نداشت میگه در این حالت محترس که چی بشه ففی هاده الحاله نره ان الاخذ بقون الصحابی اولا میگه در این حالت نظر ما این هست که گرفتن قول صحابی چه هست اولاتر است واقعا یکی از اصولیون برصف